سیدنا و نبینا حبیب اله الالمین و محمد الله عمد سبحانه و محمد محمد علیه و عالی و اهل بیت امم سونی لاسیه ما وقیت داره ابو اشاند خودان از آداری های همیه سبران عزیز و بزرگ ما رو مفتقه بود در قرار برد سالینم من هیچه خود حالا نیامده بودم خیلی برای خودت و رفت و و اون و و ما سال سه میشه خورن نیت میکنی بزرگواریشه مسکون ریزی احتمالاً نظامی که قبل از سقوط سناش شرکت مالی که خداوند تو بر همه از مسیحان را مورد قبول در کنش قرار وزر مسند درباره بهش شناسیه امام خمینی رضو الله عليه. تمرز هرچیز این روشی که امام شاگرد من آیه مشکب الدکریم آیه رضو الله عليه و کریم شاگرد من در و شارکی هم شاکرده محکوم میرزا در بعد میرزا میرزای شیازی میرزای بزرگ همون کسیه که حوزه نجی رو میخواست متقیل بکنه به سامر را و خودش هم تشکل به سامر را در اونجا درس شروع کرد طلب آقا از حتی آقای اخو سامره که آقای هم تصمیم داشت بشرف بشه به سامر را که میرسای شیرازی بیشون که شما بگونی نجف که بوزن نجف تعدیل نشون این را برای نفس کردم که از قدیم توی نجف و سامر را این جمله معروف بوده گفتند که سامر رایان گفته دم. گفتند که بدایاتونا، نهایاتو آخرینا. یعنی کلاس اول درس سامر را، کلاس آخر درس دشیان. بدایاتونا، نهایاتو آخرینا. و, و, آخری و درکرده بشه و درس درسی که سامر را با دشیان بس نجف متفاوت بوده حالا تفاوتشان توی مواردی مثل تو فقه و صورتی جاهای اصلی معمولا ما مثلا میدن این رایی که تفکر سامر رایی دارد یعنی مثل اشاگرده ایمان اینا معمولا ترد تو را تو بس رسول و, و دارد اونایی که معمولا نجفی فکر میکنن ترد تو قبول ندارن یه یعنی مثلا اگه اینجا تفاوت هایی میتونید توشو هست مقومه اثار که نبونه خوش باشون از ازیدارن اثار یه سد محمد اثار دیده بعدیش رو فرزندی داره بنامه سد محمد کاسم اثار سد محمد کاسم که پسر باشه شو استاد شاید متحری و مصمد اینجور افراد بوده که آن متحری شاگرده سد محمد کازم اصلا به سد محمد کازم اصلا و استاد دانشگاه تهرام بوده خیلی هم آدم با سباد و بسیار بسیار بوده که پدر سد محمد اصلا که سد محمد اصلا شاگرده میرسوی شیاسی بوده و بیرسای شیازی هم احتیاط بازشبه های خودش رو ارجاع می بده بین سه محمد اصار با این سه عمله اصار دیلی که مرچه تردید خیلی بزرگی تو اولون مختلفا خیلی تبه برداشته یعنی هم تو فلسطه تو نرفان حتی واصل زبان دیگری زبان فرانسلی پیازیان تل این چیزا خیلی صاحب نزدیکی سمت خاصی است. یعنی که خانواده زنده ایشام مثلاً می‌بینیم سامبرو درست کارسالی داد. از همین تاریخ هم دنبال راه وقتی شروع کتابی داره دنبال خاص و خیلی نامه اسم کتابی. و توی این پاسخ نامه اومده ردش اجتغادیه توی سامه را را میده که میگه درس میرسوی شیرازی چجوری بود چه کسانی شرکت میکردن و سبک و ردشه نشونش بعد بخواه یکه چیزایی که اوجان پس که میگه درس ها توی سامه را حلقبی بود اصلا مستاد منش از یک دایر یعنی نیم دایره یعنی نیم دایره یعنی دو رو نیم, یعنی دو نیم یعنی دو و مشخص میکردن که چه کسی با دو نیم اول یعنی بشونه چه کسی نیم دوم یعنی دو نشستن یعنی طلبه ها بسته داشت به جایگاه علمی شون. حسابی خیلی خوبی داره در حال اینکه دو سامه را اینکه کارا شاید باشید علت تفاوت بین مکاسب و رسائل که مکاسب خیلی عبانتاشون کنه از جمع خلاف در رسائل که عبانتو هشت بشه فرابر زمیر هست مجمع زمیر ملومیست یا مثلا پرسوی میگن یکی از علتاشون دیفتا شیخن سرین رزبان و نهاده آخر و چشمش برد، آقا برده بود خوب نمیدید به میرسای شیرازی دست شد. به میرسای شیرازی همین میرسایی که سامران را بزرد و سه به میرسای شیرازی گفته بود کتاب منو تصیب کن میرسای شیرازی مکاسه رو تصیب کرد وقتی که خواست رساله رو تصیب کن شیخن از دنیا رده مفتی از دنیا مفتی میزای شیخ را از, از یعنی دست پسند دیگوه که شیخ من کار نکن به هر را که را کرده و حالا چند از بیشگی هایی که مرگومه از سار اونجا به رده روشه اجتماعی سامر را اینها بیان میکن خاله یه یعنی چند تا که ارز کردم امام خومینی تفکرش تفکر سامرهایی و خلاف مثلا با خویی رس با که تفکرش تفکر نچفیست شاگرده یا خویی نچفی شاگرده ی امام سامرهایی اولین چیزیه اینه که میگه توی مکتب سامرها به عدبیات عرب خیلی توجه زیادی میشد بر خلاف مکتب نشه که تون نچ خب به حال ادبیات عرب بوده ساده راه هم میتون و اون صده راه یا بیشتر ادبیات به خوندن تا نشی ها حاللی یهنم را مرز میکنم م های رو در صفخوامی وقتی که کتاب مکراتی رو در صدهشته شهر سویدی اشون اعلام کرد که کسی یه دونه غلط توی کتاب من پیدا کرد یه دوره کتابش به دیه میدم خدا آی مدرس من مطور رو علایی که یه روز نفتر خدمت آیتون را خوی رزبان و ناره آیتون خوی فرمید که مدرس برو هفت در دوره کتاب بیارم گفتم برای چی گفت که بودی خب هر یه دور کتابه تا غلطی بده کنم گفتم تو خب آقا میارم ولی شما اول غلط رو نشونم بده تا بردر میارم آقای خوی تا غلط رو نشون و هیچ کدام درست نبود و گفت من هیچ ندادم. یعنی مثلا تو یه نزشه اینطوری بود میرزای این نزجه تو سامن راست اما شیرازی وقتی که قوانین رو نوشن. خودش اعلام کرد که توی قوانین دوازده هزار تا قلط نوشن. و کسی قوانین رو میتونه به و یاد بگیره که دوازده هزار تا پیدا بکنه اگه کسی کتاب رو خون پیدا نکردی از این قوانین نخونده بعد یه کسی یه وقت یه نامه نوشتی میرزای گفت که آقا شما توی این کتاب تو مزکر و مهنس رایت نکردید زنیر مزکر به مزجعه مهنس یا بلعکس میرزای در درست جوابش نوشت الامرو به تذکیر و تعلیس سهلتون الامرو مزکره بود سخلتون رو معنیس الامروف تذکیره و تعلیس سخلتون اونم خب گفت خب جواب داره شد در حالی که این خود با این غیر از این که مبتدار و, مثل و خبر و معنیس و یه چیزی میخواد بگیده میخواد بگیده در جایز و بسیاری اینو تذکیر و اینو چون اون این نه مثل اون کسی که گفت که معف زواع چیه اوصد گفت که الوم سلبفهمی امروز از من پرسیدی و طلب ولی همه بود پریددم دیگه. مص و الوم همسا و همه امروز فراموشش دا به خنده ها و یاد نکردم که فراموش بود با خچ که این. علی اون سهل یا الیوم اون هم گروف زبایده این همون گروف زبایده که این جمعش کرد گروف الیوم اینه همسا. اما توی مکتب سامر را ادبیات مثلا بیده الان شما همین کتاب مناهج و امام خمینی. این تحصیل و اصول تقدرات و اصولیه که آیتولا صبحانی از امام نوشته ولی خود امام هم کتاب مناحض و کتاب عرب داره که اگر این دو تا هم آیست کنید یه جاهایی این عبارت که حالا آیتولا الان علاقایه هست نوشته امام نوشته شما همینکه که منافج رو که نباه کنید و مثلا توی بسته موقعید وقتی نماغی خواهده توی و رو بست کنه بین اسم جنس و علم جنس اسم جنس نکرد مثلا چون نکرد علم جنس معرف است مثلا العقرب الاقرب одну یعنی این اقربا یعنی اقرب الاقرب یعنی اقرب رجل هم یعنی رجل این رجل هم جمس اقرب یکی معرف یکی نکرد چرا داره و قدرش کجاست چود الاقربم یعنی این اقربا یعنی هر اقربی و معرف است چه تفاوت میکنه مثلا این دوتا اون اسم جنسی علم جنس معنای حدان نکره است و اگه ما رزبان و این ای بحث و مطلب می کنه و اینکه که مثلا مطلب و مقید مربوطه به اسم جنس و مربوطه به علم که مثلا در چه دیده از بحث عدبی یک بحث خیلی بوده و مصوری را نتیجه می گره. سامه رای ها ادبیات این رو اینجا بخورند با این طلاه برو چه دیرسستان اولاره در نود دست خارجش حرفکیه اوورمال گ میخورده و این اطلاده محدری کمی که شاگرد ما بود همیشه الکیه را از آخر به اول از وی میخورد یعنی این قدر اینقدر عدد یاد کردش کن بوده همون خمینی تو سخن رای یعنی معمولی برای مردو که سخن یه وقتی حدیث را کنه کلومو بلو و حلال فطره اللا هم و عقبا درستش عقباییه او منوزانی و, و که دارد جوب در احبا احبا این گفتار که هم کتابی چاپ شده به عنوان فس فو صی هم این کتاب بررس چاپ شده که اونه ماهی رکی میان طولیت جمکان اولی کتابی مقدر میرشت میرشته که این کتاب رو یه وقت یه لفت از حمدان و جمع روی گفت که این کتاب همه جشهی میرشته رو بلان مصبی این همین امان خومیدیه یا کسیه است میگه ما کتاب رو گرفتیم بردیم خدمت امام گفتیم آقا کتاب مال شماست امام فرمید بله این کتاب مال من ساهای سال شد و دو خونه ما حملی کرد کتاب های من برد اینم برده این کتاب من حالا پیدا شد بعد از مثلا پونزد سال بعد میگه به امام گفتیم که اجازه میدید شابش کنیم فرمود خب اشکال نداره حالی که میخواستیم چهار بکنیم یه دو خوندیم کتابو که غلط نداشته باشه و تو مقدمه کتاب ازنا کتابو که خوندیم یه جاش امام خمینی تو کتاب میگه که من کلمه قهیت را معنیش را نفهمیدم ما پیش خود میگوردیم قهد رو اون سال 45 سن بیشون را بی کتابم که نبوده ما رفتیم کتاب لغت گشتیم تو لسان رو العرب پیدای کردیم که قهید به منی قهطیه و سال قهطی رو نگم قهید بعد کتیم که حالا بریم به امام نشون میدیم که آقا اجازه میدیم چه که شما نفسید پیدا نکردم منی کلمه رو مپیده کردیم درست شده نیست بردیم خدمت نشونش امام رو دادیم امام خردید که آن بعد از پوز در سال خردید که بله من اون موقع که این رو می دیده بودم و قبل موقع می که منصور اشتباه کرده و قوهیت مرمولی بیمنابش یعنی قدر تمام اینقدر قدیل که مثلا قلط منصور و لسان پس یکی از بیشکی های سامر رایی ها به عدبیات احتمال زیاد میدن نمیدونم این است حالا فکر کردیانت یه ای آیه من جا هستن هست هم سالمان چرا عشقه هم سالمان هم سالمان. مزکر نیست و تو سویتین تمیزه است اگر مذکر عددش مونده از دا به لکس چرا بوده من جا تو امساله ها امسال رو اش، عشق باید موننس باشه و چرا من جوابیل حسن هم برون عشق رو امساله ها موقع زمانه عبد عبدالناصر توی مصر تصمیم کردن که یک پرهنگستان عربی درست بکنند و اینجور مسائل ادبیات عرب رو اصلاح کنند مهمترین استادای زبان عرب کل دنیا رو توی سر جمع کردند و خیلی هم کار کردن خیلی خیلی کاری هم یکی از کارشونی بود یه کتاب ادبیات عربی نوشتن سد و بیس چند بسرد 124 رحلی لغت لغت کردن زبان عربی همین رو ندونیم مثل همین یکی از بلمای شیعه بنامه محمد جزایری که توی سامر را در بود یک کتابی به بنامه مرق دوته زیر علوم عربیم شوید تر سفرم نیست کم تر سفر یک کتاب خیلی بوچی. کتابی این کتابی که جهان عبدالوناسه و ایناسه 120 جلد بزرگه 120 این آیه سر محمد جزاهی کتابی نمشی نبدو پیسی به عربیه کل اون فرهنگستان مصر و تمام این کارش منحل شد و تو نجف مثل یه عالم ادبیاتش این قدر که کل کار اون مجموعه لغویست و همه اونو رو منحر کرد یعنی اینجوری دوی سامر را ادبیات میخوندن دار این اول و باز حاله این رو بگم برای شکنه میدید که حسن اصفهان رزبان راله کل یه پسر داشت بایتولا برچهت شاگرد آقای حسن اسفانی بود و باسترالحسن هم نمیدنم دید, دید، تقریر خیلی خیلی کم داره الا چم و طلبه برچهت میترمونه که ما یه موقعی فهمیدیم میدیم که آسترالحسن اسفانی وقتی میاد درس میگه اصلا مطالعه نمی کنه میگو این از اینجا ما فهمیدیم که یه موقع خوب درس روز اول روز اول سال تحصیلی بود وقتییم دسته آسطبول هستن آسطبولن گفت که پاررسال درس کوچ رو تموم شد که حالا دیدام شروع کنیم هیچ کسی نمیدونست گفت که حالا که کسی نمیدونه از حال یه نفر یه مسئله بگه تا حال امروزارش بهگذ تا بعد ب شو یه نفر یه مسئله گفت آستوال حسن اسفحانی کل عقبال اون مسئله رو گفت تمام رو با سند همه شو بند دونه دونه سند روایاتم بررسی کرد از نظر رجالی و یه فتوه هم دارو به دست همون شد از هم مطالب نکنه دیم روزایی دیگه که میومد درس، درستا مثلا اگر امروز درسش کتاب و بود اگر مثلا یه نفر یه چیز سوال میکرد شد به هج. دیگه اصلا کلا درس کتاب سلات دیر تقلیم دیگه از امروز درس کتاب و اگه اگر حالا تو این کتاب و الهجی که حالا داره برس میکن یکی زیزیز از زیز زیز مکاسب رو دیگه درس میشون مکاسب که فردا یک کسی یه چیز تو همین بخص مکاسب را شد به روزه درس درست میشد کتاب و سن ولی درست آستان مثل این طریقه میده بار بچه بید فردا بعد میگو ولی سب نمیشده خب بنویسی که نزیدن آستان حسن اسفحانی که اینقدر قدر تو فق قبیل بوده و مسلط بوده تو رسالش نبشت اگر که میت. مرد زمیر رو تو نماز میت گذکن اگر میت معنیس زمیر رو معنیس میاریم مثلا میگوییم امنا همه نحاسه هل مستقیان و, و دامنا امتوک و بناتو امتک که یه امام جوهی من دیدم و شنیدنیست دیدم یه امام میت نمون این ببنتو امتک رو میخوند ببنتو امک خدای این مورد دختر مادرت دختر مادرت, مادرت این نهازه مستجا قدامنا امتو ببنتو امتک ببنتو عبدک نزلت بیکر و انت خیر و من ظلم بران تخیر منظور به ما عربه ها اومد از سر نماز مدره سر پیسر آسده و, و حسن رو بادشاقو بریدند پیسرشو کشتندی هم تنها پیسرشو تا بعد خوزه به مجای تنیلیدی که باشه که اون شد ازش تنیلیدی به خاطره که این زمین که نمایی مونس دشه این زمین که به مهیت بعد نمیگرده که به خدا برمی کرده باید نزلت بکر و انت و منصول به نه انت به ها این که میگه به مفغولون به, به. ازدهیر بگیدو کچه برمی به علفه هم المفغول بهی این بگیدو المفغول برمی که علفه همشان این رو مثل هسته با اون با اون هزمتش. یه اشتباه صحبی ها کرده روی یکی زمیر و مرچه زمیر و به سر که کسی عدبیاتش تویی که به هر حال این مطبع اول که سامر ها به برس خیلی اهمیت میگن و مگه میشه که های کسی واقعا عدبیاتو یه عبارت عربیانو درست بخونه. بعد ما چیچوری میخواد معنا بکنه و چجوری میخواد بر اساس حکمت خدا بایان بکنه آیا هایی شده برانو اصلا میخونه و کم لبون نزیر حالا خیلی زیاد نمونه در اون دیر نمونه هایی که کسی رو درست نخونده است استفادهده غلط کرده از یا از باید و بعد نظر ن داده یه مله خیلی در ها خوب است که هم بودیم این رو اول که یعنی ادبیات تو روی ساابت را اینج بوده با یه خود ش کو کمر ساح مدرسه خود چین نه رسمون مالله و اونتون رو خود شد در زمان مرژه تقلیدیش همین مرژه هم قلط مرژه دوسته نه در زمان مرژه تقلیدیش هر شب یک صفحه مغونی ابن هشانه میکردی در زمان مرژه تقلیدی همین همی مغونی ابن هشانه مغونه بای خونساری با احمد خونساری که قبلش منی ادرام توی در زمان مرچه تقلیدی هر روز صبح ها قرآن میخونده و کنار قرآن مهمیه به نهشان میخونده یکی مرچه تقلیدی هم توی یک کتارش نوشته هستایی کسی نوشته که اتفاق از چیزایی همین میزشیده نوشته که یکی از خیالت خود خود تبیه رو گنستان نمیگم یکی از خیالت های به طلب ها است که باب خوابست مغلی را به طلب ها درست نمیدند ها کتابش و من خودم دیدم توی خوزه ها دیدم و طلبه ای که اینجوری بسو میکرد من دیدم و طلبه شیعه اینطوری بسو میکرد. بردش بودم که مثل تا رو بران همینه فقصه بزرگ و این یکون دلن منافقه همون منی معب فلان فلان رو نداره اله یعنی انتهای قایت این منیش ابن هشام صاحب مغمی از به تو عدبیات قدیتره ابن هشام که از تو باب خامس مغونی میگه این آنی که شده به مذهب شیعه را میگوید ما سنی با خلاف قرآن اینجوری بزنگ کریم میتونید به بهشان مغونی داره حلابای ما نمیخونم هیچی زدن خیال میکنم که سنیات با قرآن بزنگ دارم و خلاف قرآن بزنگ دارم اداشم همون انتهای بایده هم مجلسی تو شام را تو نقل این <سؤال> الحمد لله بعده سيتوب بهار الانوار كلام ابن شام مغني و تو بهار الانوار نقلي كله بعدين جمله دیگه الحمد لله الذي شرع الحق على الصادعه اعداء ديجا الحمد لله سيتوب بهار دیگه ده حال یک نکته اول که یعنی سامر را میخواه به جهره دماغونهی رسمان ادبیات معلی بسیار بسیار برای شروع بوده و خیلی رو ادبیات کار میکند آقای حکیمی خدا رحمتش کنه تو بیشه کار عدبیات در اسلام میگوید که تجربه نشون داده هرکس که تو ادبیات حموشو بیشتر صرف بکنه بعدا توی فقه و حصول و خلصت و تفسیر و گلال و گلال جمع را می شود و پیشرفتش بیشتر می شود یعنی من کفایی درس می دارم من بشه می توان کشون چرا مطالعه بکنی ولی کفایه که درس می دارم هر حدود دوازده ساعت مطالعه می کنم تا یه ساعتا که کفای درس بدن. منم همون به درس می من منم کفای درس می دارم من پیل البته که مطالب کنم حتما هوا شیرم می خونم و. و دواز ساعت دو من اون دوازده ساعت و دوستنده وقت می دیگه عدبیات یک کلمه یک کلمه رو باید فکر میکنه اینقدر گوبش سرد و کار میشونه به هرها این نکته اول نکته دو و یه نکته اخلاقی نکته اخلاقی اینه که مرحوم وحید بهبهانی توی کتاب اختباه دونهایه لگه میگه که یکی از شرایط اجتحاد داشتن قوه بودسیگی هست هرکی از قوه بودسیگی داره میشه هرکی نداره نمیشه یعنی فقط درس خوندن بسته و توضیح حالا اونجه کم میده که قوه بودسیگی یعنی چی این منصده را مثلا تو کتاب مفاقی برقیبش داره به دیگه ما یعنی اجتهاد یه نوع هم میخواد فقط درست کندن ملاک نیست درس خیلی موقعی اما گناه نکردن و اخلاقی ها را کردن اینا معنا که ولی من دیگه نمیخونن نمیخونن جدید کلی دیشت نمونه. دیشت نمونه. دیشت نمونه. دیشت دو آوردن دیشب نمونی شما یه دوتون مثال میزن اینم میتونید که مساله که شهیدستانی شرح شرایع جواهر هم شرایع. و سایدشی هم شرح شرایع یعنی و سایدشی هم شرح ریمایی شرایع دیگه درست دقیقا مثل کتاب مثلا انوچه انوچه مناعی ششتن انوچه خیلی کتاب مهم نیست متاسفان تو بوز خیلی بیرقبتاً طلبانست به این کتاب به خیلی کتاب مهمی، این نوچه شرح مثل وسایدوشیه شما هر حدیثی که پیدا کنید اول باید ببینید که اون بحث توی شرایع کجش اومده و اونجا وقت توی مسایدوشی احادشی پیدا کنید پس بینید این سه کتاب شد شرح شرایع مسارک جواهر و, و یه جایی توی مساقه که وقتی داره شرای و توصیب میده این جمله رو میگه میگه نمیدونم چرا محقق هلی که افقه فقه بوده محققه هلی افقه نمیدوند چرای بیشون این اشتباه مرتکب شده این که بچه طلب آهم اینجور اشتباهی نمی کنند اینو تو مسالک گفته شرای جواهر جواهر وقتی میرسه به همین بس اینجا رو میخواد شرح بده بگه که خدا را ببینید خدا را ببینید شهید ثانی توی این مسئله به محقه هلی توهین کرده گفته بچه طلبم این رو توهین کنم توحیمه دیگه بیگه شما اشتباه کرده که بچه طلبم اشتباه نمی کنم میگه شهید ثانی توی این مسئله توهین کرده هست به محقه هلی خدا را دبین تو همین سطحه تو همین سطحه حتی یه صفحه بعدم نه که کاری کرده که شهید ثانی یه اشتباهی کرده که بچه خلقم نمی کنه یعنی همون نسبتی که خودش به محقق داد خودش این همون اشتباه داره این تو جواهی را که جواهی میگه ببین من تو هاشیه جواهر خودم این را نوشتم نوشتم که با خدا را ببین تو همین صفحه جباهر تو جواهرم که این حرف رو به مسال بزده اینه خب یعنی دیگه خدا را ببین تو همین صفحه جواهر سات جباهر اشتباهی کرده که بچه تلده نمی کند بعد دوباره هاشیه رو پاکی نفتیم و خدا رحم کند به بند یعنی همون نصفتی که به اون قالم شهید سامنی تو این رو به خودش تو همون اشتباه افتاد صاحب جواهر تو همون برس تو, تو همون جا تو همون اشتباه افتاد حالا من تو جیب ملا بردم نمونه های همین جا برسی مرموهای نایی میکرد خیلی نقل به آقای نایینی دیگه مثل این هم که یه مقدار با امام خیلی خوب نیستن سر همین که نجردی آقای نایینی خیلی برشون مهمه و امام خمیر میعبر کسی بود که میرسای نایینی رو اینجور نقده کرد یه جایی میرسای نایینی به شیخ انصاری این جمعه رو میگه تو کتاب فوای درسته میگه که اشتباه و خطا منم از عزیزه اشتباه و خطا از بزرگان ایلی که نیستا عزیزه اینو ناگینی به چه خصالی میگه تو همین صفحه ها اما بخونه اینی میگه ببینید خدا را جایی که ناینی این توهید را به شکرن‌ثاید کرده امام خمینی این همین را بکنه بل اشتباه و بل خطر میرند اصاعتیه و و عزیزه اینه امام خمینی درباره کی که بکار می‌بره در باره نایین. یعنی یعنی ناینی همونجایی که این حتیان که توهید بود به به بکار را این همین را یک کسی اومده تو همون بقت تو همون صفر در خودش به کار ب این خیلی مهمه که توی مواقص فقیقی اخلاقی تو همه چیز رعایت مساین اخلاقی بکنی که حالا نمونه خیلی زیاد داره دار من یا سر دستایتون رو گلوهای دارند رسپانون آره بودم یه کرده یه حقیق آقای گلپایگانی هست ساخت جواهنم که یه طلبم به تومی میکرد آن گلپایگانی هم فقط همیگه آهی کشید سلم ایسی چیدیگم شاید یک ماه نکس داشته بود من خود دیدم بود طلبم که دیبان شده بود دیدم اقوامشم برداشته بود به این دیبانه ها توی خیامونه خورا برد تو این میکرده یکی از بسرکان همان تو مستاری اخلاقی این خیلی مهمی هایتون هم های من ظاهری استعان رو هایتون هم من ظاهری و که من تو اتاقی که کتاب فقی باشه که هیچ و نمیخوابن با ما هرگز براس نمی کنم بلی که تو اتاقی که یک خودکاری که با این خودکار اهل بیت نویشته باشه تو این اتاق نمیخوابن و با ما نمی کنم به نیقدر آنیت اخلاق و عدم توی این واسه یه آبایین پس همینجا قوم امریکایی یه, آمریکا یه, آمریکا یه هم لگه بوزن یه کسی به گفت که شما درس های دیدی امریکا به کار تفاقه دیش گفت توی آمریکا استاد درس میده یه شاکر روی اشکال میکنه کار به جا بالا بی وقتی دارست تو در میانه چاپو در میاد تو استاد تو برم اینجوری رشاد که میکنه و اون کسی که بیشتر از همه اشکال کرده هست همه چی تم که کفش استاد جفت بکنه همیشه با اخلاق بو را تو شکوت و ایرابوکه ایسو و حفظی و هر و میدید را هر کلمه هاستی گفتم من درست خوب نمیتونم بخونم گفت که گناه کم بکن تا بتونی درست بخونیم یه نیدیم که یه دوم تو رو بشه یه چیز را اگر نما کنید یه قصه همیتونی بگن میگن که یه تنوری می بر میره هر بر منبر میرفت قشمی کرد ولی هر وقت قشمی که کمیفته تو زنا خب شما اگر همشه قشمی رو خواست شده باید گیری های دیگر جورو میفته اما خون هر کتابی که نوشته ها تو کتاب باشن چون که مثلا کتاب درباره بار امامت میرسه درباره بار میرسه ولی قشم میکنه ولی هر وقت هم قشم میکنه میفته تو توحید مثلا داره در باره نقوبت می نویسه ولی آخر بس میشه چی؟ توید. داره در معاد معات می نویسه آخر بس میشه؟ توید. بعد خود امام گیش خندش گرفتم میگه من هرچی میریسم آخرشگی برای که کشم میکنم ولی یعظه رو میره اخبانی خب نه خوب بل چه علاقه این بود دوست که خدای مطال باشه همیشه من این کار رو من این یعنی اینکه امام تو تمام نوشته هاش به خدا محطش بزنه میخوان موادم بنویسه نوسته سر در میاره میخوان امامتن به سر از تولید در میاره اینو تو این کتابه ها تو جای من امام فرانده به مطلب دو مطلب اول عدبیاتو ارسیم مطلب دو یه اخلا دولو بود که نمیدونم این حدیثی دیانم پیغمبر خدا سمان پیغمبر وقتی را میرفته می برده از از خواب رو را بیاند. و خواب شما جیلو برید من پشت سر را بیام سری سیر همیشه مردم جیلو میرفتن پیغمبر پشت که یعنی هم تواسی فروتنی این که پیغمبر جیلو نباشن مردم جلو باشن یا پشت سر سری اما خومه نبخونید اما بوده اون می رفته ای طلبه کسی دنبال ما می آمده اما ناحت می شده بایین مصدره موضوعه نسید دنبال من بیارم ای این موضوعه سوال دارم بایین مصدره جوابی داده بعد که اون می رفت. بعد اون که کسی دنبالش و همونی این مکتر دوکن که رایت توی مطانه و این که امام خومین صاحب حدث بود من دیروز که داشتم فکر میکردم که امروز خدمت شما چی بگم و همه موقعه میگردم که اینا بگم یا مثلا من اگر بعد از خدا منو من دراشم و من دو تا حاشیده من خواسته رو مثال میزنم و بود و کاسه خود حواشی زیادی داره یه حاشیه مکاسبه سیده یسدی صاحب ورده یه حاشیه مکاسبه باسم المرجوب ماقانی حالا حواشی یک خیلی از حال این دو تا رو بخوام ببینم عارف اینکه بین این دو تا حاشیه سیاده یک از فرق داره ماقانی همش نظر ورده هر مطلبی رو که از شیخ نقل بکنه دا میگه شهر توزید چی برمیده الان میگه برمیدی تو برمیده این تو برمیده, برمیده, برمیده. نقل بول زیاد داره خوشی یه سید یزدی برعکس اصلا نقل قول ندارد همش ترابوش فکری خودشه به عبارت دیگه مانقانی تطبق سیاد داره سین یزدی تطبق نداره اما فکر اندیشه سیاد داره اگر حرف نو خواستی هاشه یه سید رو یا هاشه یه مطالعه رو ولی اگر که قول و اقعال و کیتش گفته تو گفته میخوایید هاشه یه مانقانی مطالع ما قامیم مثلا مثل مفتاول کرام هست مفتاول کرام همه شدید شدید الان این دو هاشه مکاسبیم پس یکی گردابری مطالب من اون توشه یکی هم اصلا این چیزها رو نداره اماش حرف جدید بسنید اگر اینا خمینی با هایتول خوی رسبان الله علیه ما این دو بزرگ بار رو واسه کلید ها میبینید روشی شو همه چراها اما خومه اینی چیزی که نداره نمیخونه لقیل اون نمی کنه کاملاً بکس های طول خویی که هی hey, میگه کی چی گفته کی چی گفته کی چی گفته یاده دو علاق ندار های طول خوبی تطبعشی سیاده اما خومه اینی تعمقشی فکر فکرسی حالا این علت های مختلف داره داره مثلا یکی از علوتش اینه که خب اولا امحوم ای زندگیش اینجوری بود به همون یاد میکنی از این شهر دون شهره تغییر ای زندان میپنی خب آدم که نمیتونه هی تطبق بکنه چون کتاب نداره آقای رهی بیانه طریقت جمع بود که حتی امحومی یه مدتی چیزم نداشت بساید بس هم نداشت هر بس سایر شیر میخواست به من گفت که فان چ و سایر شیر بیا و برایش می بردن مطالم که دوباره به مقصم یعنی حتی بس سایل رو نداشت خب کسی که اینقدر کتاب کرده به تبدیدش میکن این طر برم خب اون که کتاب نداره دییم ولی سر قهر همش چیکار می کنه فکر می میکنه و عکس کل رو خوبیی همیشه تو یه نج همیشه همور کتابیم هم در دستش هست گوهه تطبع میکنه هر دوتاش خوب ما ولی به همین یه صدکه اون یه ما باید به احبای علمه داشته باشه ولی اینکه که خودمون نه آوری به فکر نوع آوری تو آثار امامه به اینجه هد آوری تو تون خویی کمتره فقط هم این یکی از چیزهایی که توی یه از اتحادی راستنده اینه که هر دو ولی به هرهای اجتحاد فکر جدید میخواد تحمل جدیدی که آدم حرف جدیدی برای هر مسئله داشته باشه یا فکر کن این هم یکی از بیشگی های امام که امام صاحب حدثه یه بخی بند خدایی یه نب دینه بشت حالا شده خدا رحمتش کن یه نب دینه بشت بر بهارون انهار و تو نقدش این رو گفته بود گفته بود که علامه مجلسی سی خود خیلی سرش بوده, بوده حرفاش خیلی دقیق نیست چون خیلی گرفتاری سیاه بوده میگد که آیتولا برو جردی هر وقت میخواست اشکال بکنه به شکل توسی اول یه مقدمه ای بیان میکن میگه که شکل توسی قادمی بوده که اولا خیلی آب دو ظاهر بوده این کتاب رو مثل و مینال بده دیران ختم عمل کرده برکه عمل کرده به ضرورت شش قطعی رو عمل بکنید بعد که اون رو عمل کردن و بعد کتاب داد به مردم دلی آدم اینجور صاحبی دیونه ها و روهای برو جرده گفته که شیخ روزید برای هر یه مسئله فقیدی در اون عمرش یه دقیقه بیشتر وقت نداشته که فکر میکنه کسی که برای هر مسئله یه دقیقه فقط فرصت فکره کردن ده. بعد آقای گرز جهدی می کنید واقعی من برای یه مسئله خیلی یه ماه می شیدم فکر بکنم خب طبیعیه که حالا و یه اشکالی همی راخت می شه که توستی بکنیم برای شکره که یه دقیقه فرصت فکره کردن داشته از بسترش رو مبوده و بزن ساحت رو بزرگان مبر راست زکی و خدایی نکردم با چیزی به شما بگویم ولی حالی نمیخوام بگیم یه وقتی کسی صاحب ویچر قبیه یا یکی صاحب هر دست قبیه کردم که امام کومینی صاحب هر دست بود آیا کسی میتونه این رو که مثلا اگر یه مسئله فلسدی را از اقوالی سینا یا از مول سدرا سؤال کردیم این اصلا فکر نکرده جواب داد. فکر نکرده جواب داد. همون مسئله فلسفی یا از من سوال کردید من یه ساعت فکر کردم بعد جواب داریم جواب کنون درسته من که یه ساعت فکر کردم یا همون مول سدرا یا ادنی سینایی که فکر نکرد جواب میده اون درسته او صاحب حدس، حدس قوی کار سالی فکر را انجام میده تو کمکر سالی نمیشه بگوییم که مجلسی یا شیخ توسی چون فرصت کردن نداشته پس حرفش ندرسته اگر ملاک فکر بود فکر فکر حرکت ایران میلاد و من مقادییر ایران رادی فکر زمان میبره. اما اگر چیزی حدس باشه حدس از زمان نداره. پس صاحب حدس باشه دفعتا جواب بودده همون جواب دفع یهو از جواب با فکر دیگران دقتش خیلی بیشتره. اما خومیی صاحب حدسه فکر داره دار ولی صاحب هم حدیث حال یه مثال از حدیثش رو معصوم کنم به این این حال خیلی نمونه خیلی زیاد داره دار. که بخوام بگم کیا مثلا با فکر حرف زده هم و چی گفتن؟ کیا با حدیث حرف زده هم و چی گفتن؟ و کدام درقتش بیشته یه مثال یه نمونش یه حادیث فراغانی هم یکی یا دو تا شاید مثلا چه پندجا باید شاید این جوری هم از امیران مومنین علیکه سراب هم از این که اگر که شما را مجبور کردند به تبرقی از من یا به سبب من نوست بگاه این روایات همشون این جوریست اگر شما را خدایی نکردن یه جا مجبور کردند تبری نکنید گفتن تبری بکن او تبری نمیکنم کنم ولو به گشندت ولو گشتی اما اگر که مجبور رو کردن به صبب من به صبب می رو گویید بکنید تا کشته نشوید این روایات خیلی روایت اینجوری نست سردشون هم درسته اگه مجبور شدید به تبری تبری نکنید بلو کشتی بشید اگر مجبور شدید به سب بکنید تا کشته نشدید اما خمینی وقتی که میرسی به این روایات ها میگه این روایات همش برعکسه احتمالاً اگه رادی قاطی کرده راوی شنیده مسئله سب را و مسئله تبری را ولی قاطی کرده اینطور. درستش باید اینجوری باشد. اگر شما را مجبور کردند به تبری از امیرالمومنین، اینجا تبری بکنید تا کشته نشدید اما اگه مجبورتون کردن به سب امیرالمومنین، سب نکنید ولو کشته بشه شاید. و درستش همین بده اگر به یک کسی بگن که از حضرت علی تبریک کن خب تبری یه عمر قلبیه به زبانم حالا کسی بگه من تبری کردم از دلش که تبری نمیکنه که تبری یه امر قلبیه اون که میگه که اگه تبری نکنی میکشه بخو خبه تبری کردم ولی تو دلید که تبری نمیکنه کنی که الا من او کره و قلب و مطمئنون به اما اگر که گفتن که سبه بکن سبه کار به دل نداره سب همین فهشه به زبانه اگر که گفتد که به همین محلی نوز بله بده و اگر فهش ندادی میکشنده اینجا نباید فهش دارد چون فهشه به زبانه و اگر که شما به زبان به امام نوز بله کنی دیگر ها میگرد که اینا چقدر تو دینشون شلن چقدر راحت دست از دینشون برمیدن سب همین زبان میده تبری قلب مللاکه به اصلا اکراه بردار نیست و ل سا اینجوری فطوا میده داد بفرید که اگر که مجبورتون کردن بر تبری تبری بکنید اما از دلتون اون که اکراه بردار اصلا اون که تبری شدن نیست اگر مجبورتون کردن بر سب سب نکنید و رو یک پشتی میشود و شد. بله الان امام خومینی اینجوری داره میکنه یه از کجا اینو میگه؟ این حدس این حرف را امام خمینی موقعی که توی بورسای ترکیه بوده که توی بورسای ترکیه فقط دوتا کتاب داشته یکی سعیفه سجادی، یک مفاتی هیچ کتاب رجال نداشته الان که ما کتاب رجال داریم حالا ما میفهمیم که خود اون روای صنداش مشکل داره یعنی امام با اون حدس خودش این چیز به ذهن مبارکشیست پس یکی از نکته های این حال مثال خیلی داده حالا هم یک مثال ارز کردم بینو مثال خیلی از کلمات کلمات است. که یکی از نکته ها محبوم آقای... چیز محبوم آیدولا تبریزی رسبان الله ایشون هم همین چوره بودم ایشون کتاب بسیار بسیار کم داشت خیلی اصلا کلی کتابی خونش شوی شاید یه تاختشی کتاب بیشتر نمی شود اما خواهم کتاب رو خیلی خوب خونده بود و صاحبین اینجور فجر و بود دیگه اینه نوی من نهت محطم یادشترم این بود یعنی همینه یه که باید میکنه هوایون رو که یک چند دقیقیه که کسی سوالی داره بفندوید اگر که بلد بودن اینجا ما برس میکنم بلد نمیده اینجا الله یا اگر مهم پشت باید رن. این رو بفرمایی حاله چقدر فرصت داریم پرسط پرسط که بازم فعیده پرسط که گفت این گوبه حدس رو اگه باشه گوبه فلسفیه در کتاب وفاتی بلقه بمجور رو از بست حد حدث داره و اینکه راههای راهای تقلیت اصل که آدم بگیره بستایی تحضیب نفس تو چیزارا خیلی جدی بکنه بایدی آن بست خلیصه حضرت امام در خدا کتاب اشار تبدیل و بحث مقدمات اشار مفرمند عدفیات رو به بشار فهم محض بخونید این با فرمایشی تند تایی فرمونید در عدبی ها چی میشه؟ ولی همین فهم مت همین ها بیدید آقای اما هموس ها سرداره از چون سخن نمیکن اشون فرمود که ادبیات های فهم مت نکنید فهم شما عدبیات اینقدر نخوند که یه قصیده ی متنبی پنجاب بیتی رو وقتی میشنوید بدون مراجعه به کتاب لغت بتونید معنا کنید حالا من نمیگه پنجاب بیتی من میگه یه بیتاگی تونستید بدون مراجعه به کتاب لغت معنا کنید بسیار فرمونم فرد مکتب سامر را و مکتب بوم رو اگه میشه بفرموند برمید که جردی مزدفاری مزدفاری این کلا بروجده مگر ما مدرسه و مکتب هم نیستن. و مکتب سامبرای نیستی. باعث شویدی و اصلا تو اسبان درس خورد؟ اسبانه هم یک مکتب خاصی برای خودش داشت. آقای برو جدیه اون کتابه سیاحت شرق رو خونده باشه رویه که آقا نجف رویه که من اسپان درس میخوندم بعد از اسپان رفته نجف آقای برو جدیه هم که من اسپان درس خوندم رفتم نجف رفتم درس آقونده ساکتایی و هیچ رو جا یاد نگرفتم یعنی آقای که در سا خودم رفته تو نجم ولی آقای برچهده توی سفهان آقای شد و این قیل از هفته بود ولی اما قوم بیشتر تحت تأثیر تفکر واشفت دلکریم آقایی غزبانون علیه که کردن سامخ تو شو هم شما شوه پدرش خوب شد یادان برز شده بودید پدرشان هسته احمده او کتاب الکلام یا جهور کلام هست او کتاب خوبی خیلی کتاب خوبیه ایشو هم با حسین امام بوده پدر آقای زنجانی که و تو جا همین تفکرات سانه فرموزن که اون نقطهی در فرقیل علم جنس، بتم جنس، فرموزی که ترمان استفادهی استفاده تجلی میکنن از دردی میشه بگه همیشه مظمهی که موارد دیگری رو پشه رو بگم یکی این کتاب النحب برم النحب البافی عباس حسن یکی داره این بحث فرقی به اسم جنس و جنس تو کتابه قدیمی خزانت ادب عدم دادی این محصه رو شیخ رسی هست شیخ رسی سابه کتاب شنشافی شنکافی کافی اینو تو کتابه قدیمی جمعه بحث داره توی کتابه اصولی امام خویلی این محصه داره شاگرده امام از امام کرده مواند مشابه چیز؟ مواند مشابه چیز؟ نیزهای به که ما نه حق کدامه شبایی من باید شبایی من باید نه شنگه خیلی به نه نه پردادی هست یا اگه نید. اگه هست که با بردید بردید. تو روایاتی که من دوشی چیزی نمیدونم تو روایاتی اینطوری هست احر بو کلامنا فه قومون فسحا این توریت برای باید ولی من خلافه من نیست است. ما قریب که یکی تو مورد اجیم شر و بود که آبای چه مشتق یا مراکش. دو اصول ده هم که سمرات فقهیشو خوندید مشتبسته اصلی که مشتبسته دیو مرکبی بحث عدبی دیگه همین بودعایی بحث مطبی نمیدانم این که مشترک لقصی مشترک محنوی تعاروز, احب... تعاروز احبال تو قوانین تو یه صفحه 35 دلیل میاره برش 38 دلیل برای تو یه صفحه تمامشون عدب, عدب عدب لغبی و عدبی صاحب ابن وزیر بود وزیر عالم بوده بود خب خودش یه فقیه بزرگی بوده دیگه صاحب ابن اوباد وزیر دادگستری کشور روم نامی نوشت که آقای صاحب ابن اوباد. شما که وزیری دعوت میشید بیاد کشور ما رو باستید کنید صاحب ابن اوباد. جواب نامنه بشه گفت که هفتاد تا شطور بفرستی فقط کتاب های من و ابراهیم بیانه هفتاد شطور کتاب های عدقی همراهی کل جده اولی کفای همین بحث دیگه بحث مجاز و مشتر بورده میبینم قدیله بود هم همین و صلی اللہ و محمد و